بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيدان وسلم وصحبه والصحبه ما بعد بيستشيش من درساز درسية السوري يوسف عليه الصلاة والسلام ويشه السهفر مذي الله جل شأنه وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلته وعليه فليتوكل المتوكلون تركتبه تفسير باقتك بواس تفسیر قرتبی، تفسیر ابن کسیر تفسیر تبری و غیر استفاسیر دنبال این که چرا اینجا وقتی که این آیه رو میخونیم ای فرزندانم و قالایه بنی لا تدخل و منبا به مواحد یک، از یک در وارد نشید وقتی که وارد اون سرزمین پادشاه مست میچید اون شهر از یک در وارد نشید چون در داشت شهرها برای خودش از یک ورودی وارد نشید از ورودی های مختلف یا زهره فرزند فرساده میگه با هم وارد نشید از ورودی های مختلف ابواب متفرقه ورودی ابو های مختلفی چرا با هم دیگه خب نرن. چیه میگه چی چه مشکلی خب حالا میاد توضیح علما که چرا یعقوب علیه السلام اینجنین دستوری به فرزندانش میده بیشتر علما از کتاب تفسیری که یاد بردم ابن قرطبی غیر میگن اینجا یعقوب علیه السلام از حسادت و چش زخمی ترسیده ترس داشته که بچه هاش اینجا یازه تا فرزند به اون جسه و اون هیکل هم این که اونها به ترسن شاد نشون بدن هم این که اینها شاید چش بخورن اونجا خاطر پیشگیری از این قضیه گفت که شما از یک ورودی وارد نشید از ورودی‌های های مختلفی این یک توجیه یا یک توجیه چرا یعقوب اینجا الان بار دوم داره با بچه هاشو می‌فرسته بار اول بهشون نگفت که از یک ورودی وارد نشید الان بار دوم گفت شما از ورودی‌های مختلفی وارد بشید الان که بنیامین برادر یوسف هم راهشه چرا الان جای سواله بعضی علما توجیه کردن گفتن که نه اینجا یعقوب علیه السلام می‌ترسید که مثلا اونجا حراس داشته باشن که 11 نفر رو با هم ببینن بخوام با اینا برخورد بکنن حالا این مسئله پیش میاد اونج‌هایی که غربت دین درش لمس میشه مثلا خودمون الان در نظر بگی پنج تا ماشین همه ریشدار هم بلند از گلوگو اول بندری و بعد مهریز شما در نظر بگی پنج شش تا ماشین با هم همه هم امریش دارن و پیرا هم بلند خودت یک نفر با این پیرا هم بلند یک ساعت دو ساعت میکنن فکر میکنم ورودیه بازگاه مهریز قبل اینکه وارد یاز بشی زنت همراهت بچه هات همراهت همراهتن هم. نه باید بیای پایین از سیر تا پیوز زندگی تو کوچه و خیابون و خونه و منزل و کار و کاسبی دار ندارد همه چیز میپرسن می دونن ولی خب دیگه بازم میپرسن آزار و اذیت هست حالا شما در نظر بگیرید پنج شش تا ماشین با هم چه با خودشون فکر میکنن اینا یا مدن انتحاری بوندن یا نقشه‌ای دارن میترسن میلرزن دست پاشونو گم میکنن این همه آدم ریشی پیرهند کو جواد نیرو رو از جا میکنن از جایی به جای دیگر حق بهشون بدی دیگه یهو گاهی ندیدن با این شکل قیافه یهو مثلا ده نفر با هم ببینن حیبت رو بر میداره اصلا عادت نکردن با این قیافه خب این یک گمانی هست از توجیه این قضیه که چرای عقوب کفکی از یک ورودی وارد نشید یک توجیه دیگر ملا مثلا شما شروعات اهل ام کی میکنید بعد دیگه یاد میکنن فلان حدیث اومده نمیدونن صحابی چش خورد بعد اب ابوذی اون زن رو وردن روش ریختن یا اون ابوذی اون صحابی وردن رو روش ریختن و حدیثی که اومده که راست اساساً میگه چش ز انسان رو وارد قبر میکنه و رو وارد دیگ میکنه اینا حدیث اساس عین حق عین حق چش ز حق اینکه چه چش ز حق یه طرفه و این که یعقوب علیه السلام از چش ز برای بچه‌اش ترسیده یه طرف دیگه است این گمان زنی یکم سخت توی این قضیه گفتم بخاطر اینکه نتیجه اینه که چون بار اول بهش نگو بار دوم چرا ترسیل اگر چش زخم بود باید هر دو بار این چش سخ می بود خب این یک توجیه حتی هم بحث ترس اگر ترسم بود باید بار اول هم بود چرا بار اول نبود این ترس الان این ترسه هست اینم بازم به اعتراض میشه برش وارد کرد خب حالا باید بدونیم چرا یعقوب گفت ما مکلفیم یعنی پیامبر الهی حالا شما مثلا یکم جلو بریم در بحث آذوقه و اون جو و گندمی که تحویل برادران خودش میده خب برای بار دوم که جامی زرفی از اون ظرفای قصر و دربار رو در حال خواهیم داشت در اون آذوقیه بنیامین برادرش میذاره تنیش میذاره. از قبل هم به برادرش میگه من برادرت هستم نترس. از قبل گفته دارسه یک گذشته داشتی. از قبل گفته من برادرتام نترس. آمادگی داده برادرش. خب الانم گفته که یک هم بذاری توی یکی از اون آذوقه ها که سبب بشه که یوسف برادرش نگه داره حالا اون اونجا هم بحث میاد جمعان زنی های مفسرین که اینجا مک کرده یوسف و نمیدونم اومده اینجا نیروگی به خرج داده و برنامه ریزی کرده و سی رو تأخیر بکنه تو یک جمله الله خلاصش میکنه خیلی کوتاه حالا من اینو گفتم هرچند که عجله کردم اینی باز ساد میکردم اونجا هم بیاد به خاطر اینه که تا اونجا نفهمیم اینجا نمیفهمیم اونجا را غیر از اون جمله یا مفاسری جوابش یک کلمه راحت بود یعنی یک جمله مفسری میتونستم خلاصش بکنم الله میگه کذالک کد لیوسف کد نه ما هستیم که این چنین مکری را کردیم بر اون برادران یوسف کد نه برای یوسف این مکر را بکنیم یعنی ما وحی ما بود برای یوسف که تو این کارو بکنید. بکنی این همون عقوبتی که الله میگه بر سر مکران در میرن و یا مکرونه و الله مکرالله مک کردید مک میبینید مک کردید مک میبینید یوسف علیه السلام از وحی الهی بود که گفت این جام را بذارید توی آزویقی برادرم از خودش خود سرانه نبود یک وحی الهی بود الله اجازه داده حالا اینکه انسان میتونه حقش را بگیره با مکر نیرنگ با حرام میتونه اختلاف بینان جمهور میگن نه نمیتونه یعنی با حرام تو نمیتونه حق تو بگیری با دروغ گفتن و اینا میگن نمیتونه حق تو بگیری بعضی از اونها اجازه دادن مثلا حنیف اجازه داده این مسئله فقیش به کنار استدلال قرآنی است یعنی اون علما هم اختلاف کردن تو این قضیه اختلاف کردن اگر برای یوسف درست بوده که اینجا دروغ بده و مکر استفاده بکنه چه دروغ چی بود؟ داد زدن گفتن که اینا دزدن خو خب گفتن پس اینجا دروغ دیگه دوز نبود که بنیامین چرا گفتن بهش دوز؟ چرا گفتن برای اینا دزدن؟ صورت که خودشون از اند اون جا گذاشته بودن خب بودن پس اینجا دروغ استفاده شده برای اون مسئله ای که ما نمی یعنی یوسف برای اینکه برادرش رو نگه داره چرا براادشون نگه داره اونم باز ما نمیدونیم یعنی یک مسائلی هست که الله می و ما نمیدونیم الله فقط خلاصه اون جریان و را میگه این جریان ها داره پیش میاد جریان یعقوب هم من میطوره جریان پیش اومده اینا میخوان برن آذوق را بگیرن ولی ای فرزندان یا ذهنفرید از یک ورودی وارد نشید بله انسان اسباب را یعنی مثلا اون آدم باید شامگاه بخونه که آسیب نبینه ولی که کسی که چشور چش تو چه لباس خوب بپوشی چه بد بپوشی اگر میخواد چشمت بزنه میزنه. اون چیزی که تو رو نجات میدهد دسته اون چش زخم ذکر رو یادته به الله از کار صبحگاه شامگاهت معضبت بر از کار خوابت اینها است که تو رو محافظت میگه نه آن لباس ها رو بد لباس هم بپوش کسی که چشم شوره میزنه این قدرت و توانایی داره در حالا تو میخوای هر چقدر خودتو چلنخته بکنی راه نجات از چش زخ محافظت بر از کاره و بعد اگر شخصی هم چش زخ خورد از شخصی از فردی یا اینکه از آب وزوش استفاده بکنه یا آب غسلش یا اگر نتونه دستش نرسی نمیدونه راحته هفت فر الحام و صبرسته قلت ام مشرف دیگه الان من چش خوردم و من دیگه نمیتونم روی پای خودم بیستم و الان دیگه زانوم نمیدونم فلانه‌ای یا سردم ولَم نمیکنه اینا همش بهونه است چش خوردی راه حلش روخی هست خودت رقیه شرعی کن بخون روی خودت با اون دعاه الله مرب ناز اته بالباس این دعای وردی که اسوراث وارد شده در رقیه بخون هفت بار رو کف دست بخون بکشه بدنت سه بار سرت قل بخون بکشه بدنت تموم شد رفت نیاز به وسبوسی و دلتنگی تنگی و نمیدونم آجزنالی نداره که خیلی راحت دیگه نمیخواد به کسی متهم بکنی نمیخواد خودت اسپا در بیاری با خودت خودغد بکنی تو خودت بریزی نه راحت یا اینکه دست به اون طرف میرسه یا نمیُرسه خودتو روقیه میکنی تو درمان میکنی از اون چشم زخم و اون حسادت بلدم نیسی عربی دعا بکنی به زبان خودت بار اگر من چش خوردم این چشم از من دور کن شفام بده از دست چشم زخم و حسادت بعد از این نیایش و این دا حفار الحمو سه بار ستو خل بخون چنانچه در سنت اومده خیلی راحت اما اینکه من شاید چشم زخم داشته باشم کسی از من چشم بخوره وظیفه از اینکه مردم در امان باشن حالا ما در امان باشیم از چه چش چشمی کسی با کار کسی در امان باشه از ما با تبریک گفتن با دعای خیر و برکت کردن الله خیر و برکت بره قرار بده به زبان ووردی فلانی تیپش که ماشاءالله به خودش رسید کلمه ماشاءالله اکتفا نکن درست ماشاءالله بعضی از امام شیخ بن باز اجازه دادن ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمید. اگر چیزی مورد تعجب شما باقع شد فل یبرک شما دعای برکت بکنید اللهم بارک بارک الله لکه فيه الله بارک لکه فيه او بارک الله لکه او اللهم بارک خیلی روحتی اللهم بارک این چیزی که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما یاد دادن که بگیم اگر چیزی مورد تعجبمون چیز تو دلمون اومد دیدید دی یک شخصی تازه دوش گرفته و بیرون سفید شده و قرمز شده و خوش ش خب یک شهرش عباس شده یوز جلو چشمت اومد دلت چی شد؟ الله ما بارک. ی دیدی خوب صحبت میکنه خوب حرف میزنی الله ما بارک تو دل دلت اومدا. باید وظیفته اگر نگی گناهکار میشه ظلم کرد اگر چشم خرد به اون شخص ها سیب زدی ظلم و ظلم و, ظلم و ظلمات يوم القیامه مسئولیتی تاریکیه. بخاطر همین تو فقه بس میشه کسی که چشم شوری بود باید بصه بشه، باید زندون بشه، باید حجر بشه، فلان بشه. احکام داریم درباره کسی که حسود چشم زخمش اثر داره. این احکام شرعی هست درباره اون چشم شور ظلم گناهه معصیت جرمه خاطر همین نگید نگ ما چشم کی شور بوده که چشم گرفته کلا دیگه دومین بار نشه نمیدونی رسول الله اصلا نمیگه چه شور این هست اون نیست میگه هر کدوم از شما چیزی مورد تعجبتون واقع شد چی بگید بگید اللهم بارک یا ابو خود خدا خدا يا و برکت توش قرار بده بار الله خير و برکت توش قرار بده خير براش بذار يا رب خودت دعای خیر براش کن و ما اغني عنكم من الله من شيء و ما اغني من نمتونام حرش قدم اسباب سؤال بجرام بگیرم؟, بگیرم هر چقدر به شما بگم جلوه شر رو بگیرم ما اقونی من نمیتونم شما را کفایت بکنم الان به شما دارم میگم از یک ورودی وارد نشید از یک در وارد اون شهر نشید میگم بهتون اسباب بگیرید ولی کن الله اون چیزی که بخواد میشه میدونه که قرار یه چیزی بشه ولی کن اون شر رو میخواد تخفیف بده یا یه چیزی بالاخره خودش میدونه بین خودش و خداشه میگه پس از یک در وارد نشید از چند در وارد بشید منم درسته دارم بهتون برنامه میدم ولی که منم نمیتونم جلوه قضا و قدر الهی رو بگیرم هر چیزی که الله بخاط میشه و ما اغنی این تربیت ایمانیه و ما اغنی عنکم من الله من شیحی چیزی الله فقط مراقب خودتون بدونید من شما را توسیه میکنم شما اون ابزار اون وسائلی که الله در اختیارتون قرار داده شما بگیرید دیگه بقیاش با الله این الحکم الا لله علیه توکل این الحکم لله چندی جا شما دارید یکی از اونجوها اینجا این شعار یدک کیه. خوارج زمان علی بن نبی طالب خروج کردن این شعار رو یا زمان عثمان رضی الله عنه. این شعار رو بالا بردن چراشون در زمان علی بن نبی طالب بودن در دروازه ان الحكم الا لله رب العالمين الان هم همینا کتاباشون هم همش همینه کتاب سید قطب وجودی و نمیدونم همشون بخونید غیر از سوره انعام رو باز بکنید الحمد لله الذي خلق السموات والارض توحيد حاکمیت ان الحكم الا لله چه خب ربطی داره بحث خلقت آفرینش آسمان زمین توحید حاکمیت بحث اینجا یعقوب بچه‌هاشه خب چه ربطی به خوارج داره چه بحثی تکفیر حکم داره شما به من بگی الان انجام یا خوب؟ علیه السلام در این سیاق این جمله شما دارید. ای فرزندانم شما میرید وارد مس میشید نزد پادشاه مس میرید. من به تو توصیه میکنم که از یک در وارد نشید درهای متفاوت و منم فقط این توصیه هست اگر الله چیزی بخواد من نمیتونم کاری از پیش ببرم همون چیزی که الله بخواد میشه. این الحکم ایلا لله حکم هم همون حکم الهیه. این جمله کجا اومد برای چی و ماد ما فهمشی؟ لله یعنی اون حکم کونی الهی که قرار بشه مقدر الهی میشه الله اون چیزی که بخواد میشه ان الحکم الا للله درسه درسه حکم شرعی الله. والله محاكمه که بیت بجین حلال و حرامه ولی این جمله این تیکه کلامی که اینجا یعقوب بیکار میبره بر این نیست که آقا شما اگر حکم به منزل الله نکردید شما کافری شما ببنید ای این منظورش اینه که شما اگر حکم الهی را اجرا نکردید شما کافرید یعقوب این جمله رو برای چی بیکار داره میبره ما عقل داریم که جمله داریم میخوریم قصه و داستان داریم که ما باید بدونیم این جمله کجا به کار برده شده بخاطر همین علی بن میگه کلمت حق اريد بها باطل سخن حق اینه حکم لله حقه ولی این جوش باطل اشتباس. وقت تو بدونی الله در چه جایی به کار برده. اینجا این سیاق این جمله در بحث حکم کونیه مقدرات الهیه. الله اون چیزی که حکمی که خواسته میشه دست منا شما نیست. حکم کونیه الهی، مقدرات الهی اونطوری که الله بخواد اگر بخواد الله که برادر یوسف بنیامینم بر نگرده بر نمیگرده کسی نمیتونه بازش بگردونه الله به نگهش میداره همونطور که یوسف رفت نتونست کسی برش بگردونه من الحکم الا لله راضیه به حکم الهی میگه من نمیتونم حکم الله را عوض کنم حکم الله نمیشه یعنی ظاهرا شما اگر این سیاق جمله رو بخونید اون چیزی که در دل یعقوب مشخصه یعقوب میدونه که الان. یک قضیه یک ماجرا به دروخ بده و داره هم خودشو تسکین میده و هم الله داره از اون ماجرا به ما اطلاع میده میدونسه یک قضیه میخواد بشه میخواد پیشگیری بکنه میخواد تا جایی که توان داره اون ضربه کمتر بشه یا اون مشکل و مصیبت کم رنگتر بشه یا شاید بتونه کاهش بده از اون مصیبت که قرار برش وارد بشه خب اینجا میگه که این اسباب وسایل رو بگیرید هر چن هر که الله بخواد میشه ما اسباب میبینی ابزارو میگه برای پیشگیری این بحث پیشگیریه یعنی اومدن پیش شیخ بن رحمه الله گفتن که واکسن اومده باید واکسن سل بزنن فلانه با باید بر الله توکل داشته باشیم الله بخواد ما مریض نمیشیم داد و بیداد و پا شد بحث می توکل و بحث واکسناسیون و یعنی حرفا شد بعد شیخ بن جوابشون داد گفت که این واکسناسیون که تو سنت هم داریم پیشگیریه شما اینقدر داد و میکنید؟ میگونید خیلی تو اون دورانی که فتوا شیخ باز بر جواز بود اجازه داد خصوصا بر بحث حجاج که باید بزنن و تا بیان بتونن حج بیان واکسن سل و اینا باید بزنن خب خیلی خیلی از علما مثلا اومدن موقف نشون دادن شیخ باز گفت ما در سنت داریم که شخص صبح هفت دونه عجوه بخوره اگر هفت دونه عجوه خورد دیگه در اون روز کسی نمیتونه بهش آسیبی برسونه سحر جادویی مبتلا به سحر نمیشه پیشگیری میکنه پیشگیری میکنه چی هفتتون خرما اسباب حسی همونطور که ما اسبباب عنووی داریم از کار تو میکننی از کار صبحگاب شگاها به خاطر اینکه آسیبی به معنووی بد نخوره اینجا هم برات هفت عجببه گذاشته به خاطر اون آثار حسی همونطور که اینجا خرما درست شد اونجا هم وکسن درست میشه این استدلال منطقی کیه شخ به باز رامه وال بر اونایی که مخالف بودن توک یعنی همین ابزار وسهالا گرفته نی از اون ابزار اختیار داریم استفاده بکنیم وگرنه چرا انسان زره می توی یه جنگ خاطر پیشگیریه دیگه اینجا همیهاخوب بعد السلام این اسباب را میگیره برای پیشگیری ولی بایی وجود میگه چی؟ این الحکم ایلالالله اون چیزی که الله بخات میشه یعنی الحكم الا لله علی توکلت اعتماد من کن رب داد گرفتن اسباب توكل توکل بدون گرفتن اسباب نمیشه اون میشه توکل من بشیدم روزی الله بخات میرسونه نه اصل حرکت الله برکت قبلن زیاد شهردار به خاطر من قضیه رو توضیح الله فلیتوکل المتوکلون بر الله فقط توكل بکنن اونایی که متوکلن بر الله یکتا فقط اگر متوکلی بر الله توکل کن اعتمادت فقط به بأ الله باشه اعتمادت فقط بر بأ الله باشه این رو به عنوان یک وسیله فقط بهش نگاه هفتون خورمات چنین واکسن و سایله اگر میخوای بنده متوکل اللهی باشیم اسباب را بگیر از اعتمادت به الله گرفتن این اسبابه چاکو برای بریدن آتش برای سوزاندن ولما لما دخلوا من حیث امرهم ابوهم ما کانا یغنی عنهم من الله منشی همون حرفی که یعقوب زدی وقتی که وارد شدن ولی ماده دخلو وارده اون شهر شدن نزد پادشاه همست من حیث و عمر هم هم همون چیزی که پدرشون بود بهشون که از درهای مختلف همونطور هم رفتن مَا كَنَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ الله من مِنْ شَيْد نتونست پیشگیری بکنه از اون حکم الهی اون چیزی که الله خواسته پس یعقوب خواست پیشگیری بکنه از درهای مختلف پیشگیری بکنه از یک ماجرای یک چیزی که قراره که بشه ولی که بازم نتونست کسی نمیتونه حتی پیغمبر الهی الله بخواد اراده بکنه پیغمبر الله هم نمیتونه جلوه بشه بگیره یعقوب علیه السلام میخواد از یک پیشامدی جلوگیری بکنه پیغمبر الهیه اسبابم میده دست بچه هاشون ولی میگه نمیشه اون چیزی که الله بخواد میشه این الحکم الا لله الله هست که اون چیزی که بخواهد میشه ماکنه یغنی عنهم من الله من شه ال حاجنفی یقوب و قضاها حاجتی بود در نفسقوب یقوب یک هدفی داشت. قضاها، اون چیزی که در نفسش بود انجام داد. حالا چی بود غیر از این پیشگیری چه جریانی بود ما نمیدونیم حالا گفتم بعضی ها اومدن گمانزنی کردند بزار گفتن به خاطر که میتررسید دزگیر بشن بعضی گفتم بعد بحث چش زخم که چش نخورن اینا همش حرفه همش گمانزنی چیزی مدرکی ما داد بر روی قضیه. و ان ه لدو علم لما علمناه دوباره همون قضیه که بحث یوسف رو کردم که چرا جام رو گذاشت در ازوقه برادرش اینجا الله میگه و انه لدو علم لما علمناه صاحب علم بود از اون چیزی که ما یادش دادیم کی یادش داده الله ذو علم الله یعنی از قبل به یعقوب داره خبر میده صاحب العلم الله دار اين علم را بهش ميآموزه علم لما علمنا از اون چيزي كه ما اورا آموختيم يادش داريم ولكن اكثر الناس لا يعلم بيشتر ما اردون نميدونن شما نميتونيد بدونيد برام ميتونن بدونن چون الله کمکشون ميكنه ياريشون ميده به علمش ولما دخلوا على يوسف اه إليه أخاه اخاه قال اني انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون ولما دخلوا على يوسف ومدى ناز يوسف اه إليه اليه اخا بندهش بدون کنا حس بکنن آ وایری تو یک گوشه یک بغل بدون کنا حس بکنن که حالا این دارن در یک گوشه با همدیگر حرف میزنن خب این نیاز به زیرکی و ذکاوت داره که چطور باش حرف بزنه بدون که بقیه احساس بکنن بونه برن که یک جریانی بوده بین این دو نفر قال انی انا اخوك من برادرتم یوسفم اگر ما اونجا بودیم حتما قشق میکردیم بعد از سالیان سال و مثلا از خوشالی فلا تبتئس بما كانوا يعملون خود هم در مقابل این کاری که این برادرا کردهن راحت نکن اینا هم حل میشه هم همه میگذره یه حالت دلداری تتسکین الان این برادرش اینجا در این جایگاه و مقام واقع شده برادرش هم یک گوشه کنار می و از اون جریان و ماجرا بهش مطل میسازه خب براادها بودن که تو چاش انداختن و الان پیدا شده همون برادری که دورش انداختن یا تبیش کردم به یک نحفیبلخره با قفی برک از چشپ در دور باشه خب الان این برادرره پیدا شده الان. برادرش نباید این سر رو به کسی فاش بکنه یک جریانی ماجرای اینجا باید یوسف ترتیب بده نه بر اساس حکمت خودش حکمت الهی اون چیزی که الله میخواد یک برنامه اینجا باید پیش بیاد یک سلسله اموری باید رخ بده تا اینکه اون جریان خوابه که در اول سوره بود صورت میگیره اون خوابه چی بود 11 ستاره دیدن که به مسجد میکنه الان بگه که من یوسفم که هیچکس قدر یوسفم نمیدونه شاید اصلا باورم نکنم شایدم توتعی بگن شاید هر چیزی دیگر احتمال داره ولی این جریان به وقتش مهمه عزت یوسف الان میتونه اونا رو زندان بندازه انتقام بگیره هر کاری ولی یوسف دنبال انتقام نیست برخلاف بعضی از مفسرین که اینجا اومدن زاویه رو تنگ کردن گفتن که بله اینجا وقتی که بنیامین رو گرفت کنار زد و بعد اومد گفت که اینا دزدن اینجا مکر یوسف بود اینجا خواست انتقام بگیره مکر خودشون رو به خودشون بر و فلان و از اینجور قضی ابدن اصلا جریان انتقام نیست اگر می‌خواست انتقام بگیره همون بار اول انتقام بگیره همون اول که اونا رو شناخت بعد خودش میرفت ده نفرشون زندان مینداخت و پدرش میار پیش خودش زندان که راحت بود همه کاره ای دربار مصر شده میتونسه هر ده تاشون زندان بندازه پدرش هم بیاره به خودش رو پدرش باشه ولی نه دنبال این نبود اون چیزی که یوسف را در آخر عزت میده مهمه بخششش از برادران و توبه برادران که اینجا قدر یوسف و قدر دینش رو بدونن و قدر نعمت ایمان به قضا و قدرشون رو بدونن که چقدر مهم بود اون موقعی که این ایمانه رو نداشتن نسبت به قضا و قدر تلخ الهی الله میخواد این ارزشه را به ما بگه چقدر ایمان قضا و قدر ارزش داره. کنید و نگاه بکنید فرزندان پیغمبر الهی‌اند ولی از این ایمانه بیخبرن غافلان از ایمان به قضا و قدر که الله در قضا و قدرش حکمتی داره و شما نباد ای بندگان حسادت بورزید نسبت به اون کسی که از شما بهتره، یه کسی چیزی داده، الله به که چیزی نداده. درس های بحمده، بحمده، و خیلی درس‌های دیگر سبحان الله وبحمده، سبحان الله و صلی الله علی و محمد.